اجبار به پیروی از اعمی اتخار و اهل بیت طبق نظر ما نبوده بلکه طبق دستور سریح نبی مکرم بود. رئیس شیعه امام علی علیه السلام در دامان رسول خدا پرورش یافت. مکررن رسول گرامی اسلام به امیر المومنین اطاعت تو اطاعت من است و مخالفت با تو مخالفت با من است.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 لذا خوب است، شما هم به آن اعتنایی نکنید. خیلی عزم میخواهم، مجبورم که بگویم یا شما کم مطالعه هستید، یا عمدن نمیخواهید زیر بار حرف حساب بروید. به چه دلیلی میگویید این حدیث صحت ندارد؟ یا خبر واحد است، در حالی که هم بخاری و هم مسلم و هم بسیاری از علمای خودتان این حدیث را در کتب خود آوردند؟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 تا دستشان به جلد کتاب نخورد تا چه رسد به اینکه که آن را مطالعه کنند این از کم اطلاعی شماست خوب است که بیایید و به کتابخانه‌ها و مدارس ما سری بزنید تا ببینید که محصلان شیعه قسمت زیادی از علوم صرف و نحو را از کتابهای علمای شما می خانند بگذریم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 علی کرم الله وجههو پیامبر میشود بلای کاملا این حرف را فقط ما نمیگوییم بلکه بعضی از علمای خودتان نیز به آن اقرار کردند از انص مالک روایت شده که پیامبر فرمود به خداوند متعال مرا بر تمام انبیا برگزید و سپس برای من وسیع انتخاب کرد و علی پسر عموی مرا برگزید و بازوی مرا به او محکم فرمود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 جناب واعز در این مورد از آقای حافظ مطلب را جویا شد. در کتاب معتبر از طریق ابو حدیثی داریم که رسول اکرم امر فرمود تا تمام درهایی که به مسجد باز میشد را بستند الا در خانه ابو بکر و سپس فرمود ابو بکر از من و من از ابو بکر هستم.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 ابوزر میگوید به خدا قسم هنوز دعای آن هن حضرت تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و آیه بنایت را وحی نمود. تا جایی که ما شنیدیم حدیث منزلت اختصاص به علی کرم الله و بچه او ندارد بلکه در مورد ابوبکر و عمر هم نقد شده است. رسول خدا فرمود ابوبکر و عمر برای من به منزله هارون برای موسی هستند. رابی این حدیث قزاع ابن سووید است.